همانطور که مستحضر هستید دهی مبارک فجر آغاز شده است و امروز روز سالگرد ورود رهبر فقید انقلاب از پاریس به میهن در دوازده بهمن 1357 است. به همین مناسبت همکار گرامیم خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر به یکی از کارگاه های تولید کننده وسایل پاستاشته بازگشت تاریخی امام امت رفته تا برای شما گزارشی تهیه کند. همکار گرامی اگه صدای بندر رو دارید بفرمایید که کجایید دقیقا کجایید الان بله همکار گرامی من همینک در کارگاه سازی هستم و الان دقیقا سر خط تولید امام قرار گرفتم همکار گرامی همکار گرامی کارگاه سازی چیه دیگه؟ همکار گرامی به خاطر دهه مبارک فج ادارات و نحاق های مختلف مقدار زیادی امام سفارش دادن که همین مسئله شده کارگاه های مختلفی برای خب. ساخت اینشون راه بیفتن در شفت کشور همکار گرامی جنس جنسشون چیه بعد این امام ها همکار گرامی خب البته بستگی به بودجه اون نهاد داره آه. ولی بیشتر سفارش ها سفارش امام مقوایی همکار گرامی مقواهی امسال اینم بگم با توجه به اینکه تحریم ها برداشته شده چند تا امام آهنی هم سفارش دادن همکاران امام آهنی <متصفيق> بله اوه او اون نیفته رو سر ملت حالا خب همکاران گرامی اونجا دیگه چه چیزهایی میسازن غیر از گرامی تو این کارگاهی ام. که من هستم، سپارش هواپیمای امام هم قبول بکنن، هم گرامی ای چه بار، راستی اون عکسی که چند روز پیش منتشر شده برای. بود که یه هواپیماي خندداری رو عنوان هواپیمای امام ساخته بودن، کار همین این کارگاهي بوده. هم کارگرم. مگر واقعا من پرسیدم، از یکی از مسئولين اینجام کارگرم. خب خب. نه ایشون گفتن نه، اونکه شبیه هواپیماي جیمبا بود رو اینها نساخته, نساخته بودن همکار کارگر. آه خیلی خب. آره ها؟ با منی من... الان چیزی دا. شده همکار گرامی همکار گرامی چی شده همکار گرامی یکی از کارگرای اینجا بیروز دیر امام آهنی مونده مجروح شده آخی. اینه که مسئول کارگاه از من خواهش کرده بیام سر امامو بگیرم میخوان جا به کنن همکار گرام اخ اخ اخ, آخ. کار شختی سر امامو گرفتی الان آخی. یعنی اخی هم آهنیه یا مقبایی آقا بپا هل... بپا اه آه! <اقی> نمونی زیر امام کار علا... دست خودت بدی هم کار گرامی آقا بستر گرفتم شما اون برش رو میگی آقا تشکره توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر و امامی دیگر خدا نگهتا خدا الان پسری کار دست خودش میده میشه شهید راه امام خود امام هم نیست امام غلابیه دیگه چه فایده